بسم الله الرحمن الرحیم بنام خداوند به مهربان احرام نهایت باره برای شما گوشت تمام حیوانات چارپا حلال گردانی شده است مگر آنچه با شما خوانده می شود اما هنگامی که در حرم یا در لباس احرام هستید شکار حیوانات بر شما حرام است و تحقیق خداوند آنچه بخواهد حکم می کند ای مؤمنان با خدا خداو به حرمتی مکنی و هم با ماه هرام نه با حجی و نه هم با حیوانات دارای قلاده و نه هم به آنهایی که قصد بیت الحرام کرده اند تا فضل و خوشنودی پروردگار خود را بجویند و هنگامی که از حرم و لباس احرام بیرون شدید شکار کرده می توانید دشمنی گروهی که شما را از مسجد الحرام باز اند شما را بر آن ندارد که تجاوز کنید و در نیکوکاری و پرهیزگاری یکی را کمک کنید و در گناه و ظلم کمک ننمایید از خدا بتسید و تحقید که خداوند سخت عذاب کنینده است بر شما گوشت حیوان خود مرده خون گوش خوک و آنچه را در وقت زب نام غیر خدا بر آن گرفته شود و آنچه به اثر خفه کردن مرده باشد یا به با اثر ضربه شهید یا به اثر سرنگون شدن از جای بلند کشته شده باشد یا به با اثر شاخت زدن حیوان دیگر مرده باشد و آنچه را حیوان در نزه خورده باشد حرام گردانیده شده است مگر آنکه آن را زبه کرده باشد و نیز آنچه به سنگ های نزب شده برای قربانی بوتان و آنچه را با وسیلۀ تیرهای بختازمایی تقسیم می کنید هر یک از این اعمال فسق است امروز کافران از بازگشت شما از دین شما معیوس شدند لذا از ایشان مترسید و از من بترسید امروز برای شما دین شما را کامل نمودم و نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به حیث دین برگزیدم اما اگر به سر گرسنگی شدید ناچار شدید، در حالی که تمایل به انجام گناه نداشته باشید، پس خداوند بدون شک، آمورزگار و مهربان است. از تو میپرسند برایشان چه چی چیز حلال شده است؟ بگو، برای شما هر چیز خوب و پاکیزه حلال شده است، و آنچه را به حیوانات تربیه شده شکاری خدا مختید، از آنچه خداوند آن به شما مختید است، پس هر چیزی را که آنها برای شما میگیرند بخورید و نام خدا را بر آن یاد کنید و از خداوند بترسید و تحقیق که خداوند در حساب گرفتن صحیح است. امروز همه چیزهای خوب و پاکیزه برای شما حلال شد و تام اهل کتاب برای شما حلال است و تام شما برای ایشان حلال است نکاح زنان پاکدامن مسلمان و زنان پاکدامن اهل کتاب پیشین برای شما حلال است در صورتی که با ایشان مهر مقرره ایشان را بدهی. پاک پاکدامان باشی مرتکب فحشان نشوی و به صورت پنهانی رابطه نامشرویی جنسی برقرار ننمایی و کسی که از چیزهای که باید به با آن ایمان آورده شود منکر گردد بگمان عمل او اب تگم است و در آخرت از کاران است مؤمنان و وقتی که برای نماز با مدهگی می گیری، روحا و دست های خود را تا آرنج ها بشویید سر خود را مصح کنید و پاهای خود را تا شطالین ها بشویید اگر جنوب باشید خود را خوب پاک کنید یعنی غسل کنید اما اگر مریض یا با سفر باشید یا کسی از شما از قضای حاجت بیاید یا بر زنان نزدیک شده باشید و آب نیابید پس قصد خاک پاک کنید یعنی تیممون نمایید و با آن دوها و دستای خود را مسکر خداوند نمی خواهد به شما حرجی جیعاید کند بلکه می خواهد تا شما را پروک گرداند و نعمت خود را به شما کامل گرداند تا باوشد که سپاس بزار شد نعمت خدا را برخود بیا دارید و نیز پیمان ازتواری را که شما را به آن متحد صافت است آنگاه که گفتید شنیدیم و فرمان بردیم از خدا بترسید حقا که خداوند به درونی سینهها ها آگاه است ای مؤمنان در راه خدا استوار باشید به با عدالت با و دهید، دشمنی دیگران شما را بر آن ندارد که از عدالت و وزید. عدالت ورزید این به پرهیزگاری نزدیدتر است از خدا بترسید حقا که خداوند به آنچه بکنید آگاه است خداوند به کسانی که ایمان آوردن و عملی نیکو کردن و کرده است که برای ایشان آمرزشیست و مزدی بزرگ بانانی که کافر شدن و آیات ما را تکذیب کردند همین اهلی اهل دوزخ به مؤمنان نعمت خدا را برخیش بیا داری هنگامی که مردمی خواستند تا بر شما دست کنند ولی خداوند دست ایشان را از شما باز داشت پس خدا بترسید و پاید مسلمانان بر خداوند توکل واسه بیگمان خداوند از بنی اسرائیل عهد گرفت و از ایشان دوازده وکیل برگزیدی و خداوند گفت من با شمایم اگر نماز را برپا دارید، زکات بپردازید، با پیامبران ایمان آرید، ایشان را یاهی نمایید و به خدا قرض حسنه بدهید، تونی شک من از شما گناهان شما را میزو دایم و شما را با های داخل میگردانم که در زیر درختان آن جویبارها است. اما اگر کسی از شما بعد از این کافر شد پس براستی که راه راست را گم کرده است. به سبب پیمان شکنی شان بر ایشان دعانت کردیم و دلهای را سخت کردانی ایشان کلیمه ها را از جاهای درست آنها تحریف کرده و بهرماندی از آنچه را به ایشان گوش زد شده بود فراموش کردند و تو همیشه بر خیانتی تازه از ایشان آگاه می مگر از ایشان که خیانت نمی کنند پس ایشان را عفو کن و از اعمال ناشایسته ایشان درگذر حقا که خداوند نیکوکاران را دوست می دارد. و از کسانی که خود را نصارا می خوانند، پیمانشان را گرفتید، اما ایشان بهرمندی از آنچه را به ایشان گوش زد شده بود فراموش کردند، سپس در میانشان تا روز قیامت دشمنی و بغض را برنگیختید، و بزرگی خداوند ایشان را از نتیجه آنچه می کردند، آگاه بیسازند، ای اه اهل کتاب بدون شک به شما پانبر ما آمده است و شما بسیار چیزهای را که از کتاب پنهان می کردید بیان می کند و از بسا تقصیرات شما در گذرد برای شما بیگمان از نزد خداوند نور و کتاب واضح آمده است به وزیله آن کتاب خداوند همه کسانی را که در جستجوی رزای اویان براه های آرامش و سلامتی هدایت می کند و ایشان را با اراده خود از تاریکی ها و سوی روشنی بیرون می آورد و براه راست هدایتشان می کند واقعا کافر شدند کسانی که گفتند خداوند و عیسی سا پسر مریم است. بگو اگر خدا بخواهد عیسی پسر مریم و مادرش و هر آنچه را در روی زمین است همه را حلاق کند پس چه کسی می تواند کوچکترین مانعی را در برابر خدا و میان آرد پادشاهی اسمان ها و زمین و هر آنچه در میان آن هاست از آن خداست خداوند هر آنچه را بخواهد می آفریند. و خداوند بر هر چیز تواناست یهود و نصارا گفتند ما پسران خدا و دوستان اولی باشیم بگو پس چرا خداوند شما را در برابر گناهان شما عذاب می کند بلکه شما انسانی هستید از آنچه خداوند آفریده است هر که را بخواهد میامرزد و هر که را بخواهد عذاب می کند پادشاهی آتمان ها زمین و هر آنچه میان آنها است، از آن خداست. هست و سوی اوست بازگشت. ای اه اهل کتاب پیانبر ما به سوی شما آمد تا در هنگام فترت پانبران حقایق را بیان کند تا نگویید برای ما مجده دهنده و بیم دهندهای نیامد است بنابراین اینک برای شما واقعا مجده دهنده و دهندی آمد خداوند بر همه چیز تواناست و بیاد دارید وقت را که موسی به قوم خیش گفت ای قوم من نعمت خدا را بر خود به یاد آورید چون میان شما پیامبرانی گماشت و هر کدام شما را فادشاه یعنی صاحب اختیار گردانید و برای شما چیزهای را داد که بر هیچ کسی دیگر از جهانیان نداده ای قوم من به سرزمین مقدس که خداون برای شما اختصاص داده است داخل شدید و به با خیش باز نگردید که زیان من می گفتند ای موسی در آن سرزمین مردمی بسیار سرکشند و ما هرگز در آن داخل نمی شویم تا ایشان از آن بیرون آیند اگر ایشان از آنجا بیرون شوند بیگمان ما داخل شویم. ده ای. در این میان دو نفر از کسانی که از خدا ترسیدند و خداوند بر ایشان نعمت خود را ارزانی کرده بود گفتند بر ایشان از دروازه شهر داخل شوید و چون به آن داخل شدید یقینا شما پیروز هستید و بر خدا توکل ورزید اگر ایمان دارید گفتند ای موسا مادامی که آنها در آنجا باشند ما هرگز در آنجا داخل نمی شویم برو تو و پروردگارت بجنگی ما در اینجا نشسته ایم انتظار می کشید موسا گفت ای پروردگار من تنها اختیار خود و برادر خود را دارم پس تو میان من و این مردم جدایی گر جدایی به خداوند گفت پس آن سرزمین تا چهل سال بر ایشان حرام کرده است که در روی زمین سرگردان می شوند پس تو بر این مردم سرکش از دوگیم ما باش. با ایشان داستان دو پسر آدم را به حق بخوان. انگامی که هر یک از این دو تن قربانی را به خداوند تقدیم کردند. پس قربانی یکی از ایشان پذیرفته شد و از آن دیگر پذیرفته نشد دومی گفت براستی تو را میکشند و ای گفت بیشک خداوند قربانی را از پرهیزگاران می‌پذیرد. اگر تو برای کشتن من دست خود را دراز کنی من دست خود را به سوی تو برای کشتن دراز نمی کنم و تحقیق که من از خدا خداوند پروردگار عالمیان می ترسم من می خواهم تا تو هم گناهی مرا و هم گناه خود را به دوش خود بکشی و به این ترتیب از اهل آتش گردی و این از جزای ستمگاران نفس خودخواه او وای را و قتل برادرش را مسارد. پس او را پشت و به این ترتیب از زیانکاران گردید پس خداوند زاغ را فرستاد که زمین را بیکاوید تا به او نشان بدهد که چطور جسد برادرش را بپوشاند گفت وای بر من، آیا از این آجز شدم که به مثل این زاغ باشم تا جسد برادر خدا بپوشانم و به این ترتیب پشیمان شد از همین سبب ما با بنی اسرائیل حکم کردیم که اگر کسی شخصی را که مرتکب قتم نشده و در روی زمین فساد نکرده نکرده باشد بکشد گویا همه مردم را کشته است و اگر کسی سبب زندگی دیگری شده باشد گویا که همه مردم را زنده گردانیده است به تحقیق که پیامبران ما با نشانه‌های روشنی سوی ایشان آمدند اما بعد از آن هم بسیاری از بنی اسرائیل به اسراف در روی زمین دوام دادند بیگمان جزای کسانی که با خداوند و رسول او به جنگ و به فسادکاری در زمین سعی می این است که کشته شوند یا به دار زده شوند، یا دستها و پاهای از طرف مخالف بریده شود یا از زمین دور ساخته شوند این برای شان است در دنیا و در آخرت برایشان عذاب بزرگ است، مگر کسانی که پیش از دست یافتن شما بر ایشان تو بنماین پس بدانید که بیگمان خداوند آموزگار و مهربان است ای مؤمنان از خدا بترسید و وسیله تقرب را وای پیجوید و در راه او جهاد کنید تا باشد که رستگاه شد دومان کافران اگرچی واکن همه وسایلی که در روی زمین وجود دارد و حتی دوچند آن به دسترسشان قرار داده شود تا آن را برای نجات از عذاب روز کیامت فدیه بدهند هرگز از ایشان پذیرفتن نمی و برای ایشان عذابی در ناکیس میخواهند تا از آتش دوزخ بیرون شوند، ولی هرگز از آنجا بیرون شدنی نیستند و برای ایشان است همیشه هی دوست چی مرد باشد و چی زن دست ایشان را ببرید به جزای عملی که آن را متکب شدند و این سرزنش است از جانب خدا و خداوند صاحب قدرت مونی و با حکمت است پس اگر کسی بعد از ستمی که کرده است توبه کند و خود را اصلاح نماید پس حقا که خداوند توبهش را می پذیرد، بدون شک خداوند آموزگار و مهربان است آیا نمی نمیدانی که پادشاهی آتمانها و زمین از آن خداست؟ هر کی را بخواهد عذاب میکند و هر کی را بخواهد میامرزد و خداوند بر همه چیزها تواناست؟ ای پیانبر، آنانی که به سوی کفر میشتابند، نباید ترا اندوه این سازند از کسانی که به زبان خود گفتند، ایمان داریم، ولی دلهایشان ایمان نیاورده است قواجیان که به هر دروغی گوش فرا می دهند با مردم دیگری که پیش نیامده آنگوش می نهند کلمات را بعد از آن آنکه در جای اصلیش اش قرار یافته است تغییر می دهند می گویند اگر برای شما این حکم داده شد یعنی طبق نظر شما حکم صادر گردید آن را بپذیرید و اگر این حکم طبق نظر شما داده نشد از قبول آن اجتناب وازی و چون خدا اراده گمراهی کسی را بنماید برای او از جانب خدا هیچ چیزی کردن نمیتوانی. توانی هم که خداوند نخواسته از تا هایشان را پاک گرداند برای ایشان در دنیا است و برایشان برای در آخرت عذابیست بزرگ به هر دروغی گوش هر هرامی می دهند هر حرامی را میخورند. پس اگر نزد تو بیاین در بینشان فیصله کن یا از ایشان ایراد نما و اگر از ایشان ایراد کنی هیچ ضرری با تو رسانیدن نمیتوانند و اگر فیصله کردی با انصاف در میانشان فیصله کن حقا که خداوند مردم من را دوست دارد و چی گونه تو حکم می در حالی که تورات بدست رسشان است و در آن حکم خداست بعد از آن نیز اعراض می کنند و آنها واقعا مؤمن نیستند به تحقیق تورات را فرستادیم و در آن هدایت و روشنی است همبرونی بنی اسرائیل که به فرمان خدا تسلیم بودند با آن برای یهود حکم می کردند. و علمای ربانی و دانشمندان یهود نیز به سبب اینکه به کار حفاظت کتاب خدا گماشته شده بودند و بر آن گواه بودند بنابران از مردم مترسید بلکه از من بترسید و آیات مرا در برابر بهای ناچیز نفروشید کسانی که مطابق با آنچه خدا فرو فرستاده حکم نکنند هم ایشانند کافی. I yeah. و بر ایشان در آن کتاب حکم کردیم یک تن یکتن یک تن و چشم در برابر چاشن بینی در برابر بینی گوش در برابر گوش دندان در برابر دندان و زخمها در برابر یکدیگر دیگر قصاص می شود پس اگر کسی از قصاص درگذرد این عفت کفاره گناهانی وی می شود و کسانی که مطابق و آنچه خداوند فروفرستاده حکم نکنند هم ایشانن ستم گهد. و تحقیبشان ایسا و پسر مریم را و حیث تصدیق کننده آنچه پیش از او از تورات آمده بود فرستادی برای او انجیل را دادیم که در آن هدایت و روشنایی بود و آنچه را پیش از آن از تورات نازل شده بود تصدیق می کرد و هدایت و پندی بود برای پرهیزگاران اهل انجیل باید به چیز حکم کنند که خداوند در انجیل فرو فرستاده است کسی که به آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم نکند هم ایشانند فاسق و به تو کتاب را به عهد فرستادین در حالی که آنچه را پیش از آن از کتاب نازل شده بود تصدیف می کند و بر آن نگهبان می باشد پس میان ایشان به آنچه خدا فرستاده است حکم کن و به ایواز احکام راستینی که به تو آمده است از هوای نفسشان پیروی مکن به هر گروهی از شما شریعتی و راهی مقرر کردید اگر خداوند اراده می کرد شما را امتی واحد میگرداند ولی خواست او این است تا شما شما در چیزی که با شما داده است، آزمایش کنید پس به نیکوییها ها شتاف کنید بازگشت همه شما سوی خداست سپس از آنچه در آن اختلاف می کردید شما را آگاه می سازد و گفتیم در بینشان طبق آنچه خداوند فرو فرستاده است حکم کن, کن و از هوای نقص ایشان پیروی مکن و از ایشان در هزر باش مبادا تو را فریب داده و از بعضی تعالیمی که خداوند به سوی تو فرستاده باز دارند و اگر ایشان رو برگردانند پس متیقن باش که خداوند میخواهد تا ایشان در برابر بعضی از گناهانشان مجازات کند و راستی که بسیاری از وردان فاسقه پس آیا حکم دوره جاهیت را می برای مردم با ایمان چه کسی می تواند از خداوند حکم بهتری صادق کند؟ ای مؤمنان یهود و نصارا را دوست مگیرید یعنی تکگاه خود قرار ندید بعضشان دوست یعنی تکگاه بعضی دیگر و کسی از شما که به دوستی به آنها رو می آورد بیگمان وای از آنهاست بیشک خداوند مردم ستمگار را رعیاب نمی سازد که در دل‌هایشان بیماری است می‌بینی که به سوی یهود و می شتابند می‌گویند می‌ترسیم مبادا به مصیبتی به ما برسد پس به زودی خداوند برای مسلمانان پیروزی میسر میگرداند یا گشایشی از نزد خود فراهم می‌سازد در آن وقت است که منافقان از آنچه در دل پنهان کردند به شیمان میشوند مؤمنان میگویند آیا اینها همان کسانی اند که با تأکید به نام خدا سوگند یاد میکردند که واقعا آنها با شماید اعمال ایشان هبته شد و از یان کار شدند؟ ای مؤمنان اگر کسی از شما از دین خود برگردد با خداوند مردمی را خواهد آورد که ایشان را خداوند دوست می دارد و ایشان نیز خدا را دوست می دارند مردم با مؤمنان فروتن بر کفار سختگیر در راه خدا جهاد می کنند و هرگز از ملامت ملامتگران نمی ترسند این فضل خداوند است آن را به هر کی بخواهد ارزایی می رماید. و خداوند گشایشگری داناست بیگمان دوستی واقی شما خدا و او و مؤمنانند آن که نماز را به تمام و کمال ادا می کنند زکات می دهند و در پرستش خدا فروتن می باشند و کسی که خدا و او و مؤمنان را دوست بگیرد بیگمان حزب خدا هایند غالب ای مؤمنان از اهل کتاب پیشین و کافران کسانی را که دین شما را به مسخره می گیرند، و آن را ملعبه قرار می دهند، دوست نگیرید و از خدا بترسید اگر واقعا مؤمن هستید و هنگامی که مسلمانان را به نماز فرا می خوانید یعنی آزان می این نامسلمانان آن را به تمسخر و بازی می گیرند این از سبب است که ایشان قومی ام نافهد بگو ای اهل کتاب از ما انتقام نمیگیرید مگر به این سبب که ما به خدا و آنچه به ما نازل شده است و آنچه پیش از ما نازل شده است ایمان داریم و حال این که اکثر شما فاسقند بگو آیا شما را به چیز بدتری از این از نظر مجازات شدن در نزد خدا آگاه سازم کسانی که خداوند ایشان را لعنت کرده و بر ایشان خشمگین شده و از ایشان مسخر شدگانی به شکل بوزینگان و خوکها ساختن و شیطان را پرستش کردهاند اینها از نظر مرتبه بدترند و از راه راست گمراهتر و چون نزد شما آیند می گویند ایمان آوردیم در حالی که ایشان واقعا با کفر در آمدن و هم ایشان واقعا با کفر بر و به آنچه پنهان داشتند خداوند داناتر است بسیاری از ایشان را می بینی که در گناه تجاوز و حرام خوری شتاب می ورزند واقعا بد است آنچه ایشان مرتکب می شودند. چرا علما ربانی و دانشمندان یهود ایشان را از های گناه اندود و حرانخواریشان منع نمی کنند واقعا بد است اعمالی که ایشان انجام می دهند. یهود گفتند ید خدا بسته است دستهایشان هایشان بسته باد سبب این گفتارشان معنت شده است بر ایشان نخیر بلکه هر دو ید خداوند گشاده است هر گونه که بخواهد خرچ می کند و کتابی که با تو از جانب پروردگارتو نازل شده یعنی قرآن مجید بر سرکشی و کفر بسیاری از ایشان می افزاید. و ما در میانشان تا روز قیامت دشمنی و کینه توضیح افکندیم هر باری که آتش جنگ را میافروزند، خداوند آن را خاموش می سازد و همواره به روی زمین سعیب و فساد می و و خداوند مفسدان را دوست نمی دارد. اگر اهل کتاب ایمان می و پرهیزگاری می کردند ما واقعا از ایشان گناهانشان را می و ایشان را درباهای پرنعمت بهشت را می دادیم اگر ایشان تورات انجیل و آنچه با ایشان از جانب پروردگارشان فرستاده شده بود برپا می داشتند بیگمان از آسمان و زمین روزی می گروهی از ایشان میان روند اما اعمال بسیاری از ایشان ناشایسته است ای امبر پیامی را که از طرف پروردگارت بر تو نازل شده است برسان و اگر چنین نکنی رسالت او را انجام ندادی و خداوند تو را از شر مردم فساد پیشه نگه می دارد که خدا خداوند گروه کافر را هدایت نمی کند بگو ای اهل کتاب شما با چیزی نیستید که بر آن استناد ورزید تا رحمودهای تورات جیل و آنچه را از طرف پروردگار شما برای شما فروف رستاده شده است عملی سازید و بایقین آنچه با تو از جانب پروردگارت نازل شده است و سرکشی و کفر بسیاری از ایشان می افضاید بنابراین بر رویه مردم کافر غنگی مماش. آنانی که به قرآن ایمان دارند و آنانی که یهودی شده و سابیها و نصارا هر کسی که به خداوند و روز قیامت ایمان آرد و کار نیک کند پس بر ایشان نترسید و نه هم ایشان اندوگین می شود بیگمان ما از فرزندان اسرائیل پیمان و استواری گرفتیم و به سوی ایشان پامبرانی فرستادیم هر باری که با ایشان پیامبری چیزی را می آورد که مطابق به هوای نفسشان نمی بود اده از این پامبران را تکذیب کردند و عده ای از ایشان را به قتل می رساندند ایشان پنداشتند که آزمایش یعنی عذاب نخواهد بود آن کور و کر شدند سپس خداوند توبه ایشان را پذیرفت ولی باز هم اکثر ایشان کور و کر شدند و آنچه ایشان میکنند خداوند بیناست بیگمان کسانی که گفتند واقعا خداوند همان عیسی پسر مریم است کافر شدند در حالی که عیسی خود گفت ای اسرائیل خداوند را که پروردگار من و شما است بپرستی و این است هر کسی که با خدا و شریک بیاورد بیگمان خداوند بر او بهشت را فرام کرده است و جایش دوزخ است و برای ستمگاران یاری دهنده ای نیست بیگمان کسانی که گفتند به که این خداوند سومی، یعنی خدایان سیگانه هست کافر شدند. در حالی که جز خداوند یگانه هیچ معبودی نیست و اگر ایشان از این چیزی که میگویند خودداری نکنند، بدون شک به کسانی که از آنها کافر گردیدند عذاب در ناک میرسند. آیا به خداوند رجوع نمی کنن و از او آموزش نمی و خداوند آموزنده و مهربان است. مسیح پسر مریم نیست مگر پیانبری بدون شک بسا پیانبران پیش از او گذشته است مادر او زنی سیدی بود هر دو ایشان تعام می خوردند ببین بی که چطور برای ایشان آیات خود را بیان می کنم. و باز ببین بی که آنها چگونه از حق باز داشته می بگو آیا شما با جز خدا چیزی را پرستش می کنید که قدرت آن را ندارد تا به شما زیانی یا سودی برساند و خداوند هم اوست شنوا و دانا بگو ای اهل کتاب در دین خود حق ولو یعنی افراد مکنید و از هوای نفس مردمی که در گذشته به رفته رفتهاند و بسا مردمی را گمراه ساختند و خودشان نیز از راه راست انحراف ورزیدن پیروی مکنید با آن گروهی از بنی اسرائیل که کافر شدند به زبان داود و عیسی پسر مریم لعنت شد این از سببی بود که ایشان نافرمانی می کردند و از حد می گذشتن. ایشان یک دیگر را از گناهانی که مرتکب شدند باز نمی داشتند چی بد است عملی که ایشان مرتکب می بسیاری از ایشان را میبینی که کافران را دوست میگیرند چی بد است کارهایی که نفسشان برای آنهاست پیش فرستاده است به سبب آنکه خداوند بر ایشان این شد و ایشان همیشه در عذاب و سر میبرند اگر به خدا و پیانور و به آنچه برای او فرستاده شده است ایمان می آوردند کافران را دوست نمی گرفتند. اما بسیاری از ایشان فاسقند بگمان شدیترین مردم از روی دشمنی برای مؤمنان یهود و مشرکان را میابید و بگمان نزدیکترین مردم از روی دوستی برای مؤمنان کسانی را میابید که می‌گویند ما نصارای این از سبب است که در بینشان کیسیس ها یعنی دانشمندان و رهبان های یعنی سومعانیشینان وجود دارد و ایشان گردن کشیم و وقت ایشان آنچه را به پیامبر فرستاده شده بشنوند چشمانشان را از عشق لبریز میبینید و سبب حقیقتی که آن را تشخیص دادند میگویند پروردگار ما ایمان آوردیم پس ما را در زمره گواهان بینویست و چی دلیل میتوانیم داشته باشیم که با خداوند و دین حقی که با ما آمده است ایمان نیاوریم در حالی که آرزومندیم که پروردگار ما ما را در زمره مردم صالح داخل گرداند پس بخاطر این سخن که گفتند خداوند آنها را به بهشتهای مزداد که در زیر درختهای آن جویبارها جریان دارد و در آن جودانه و سر میبرند و چنین از مزدی نیکوکارا اما آنهایی که کافر شدند و آیات ما را دروغ داشتند، ایشان اهلی دوزه هستند. مؤمنان، چیزهای پاکیزه را که خداوند برای شما حلال گردانیده حرام مسازید و از حد مگذرید، حتی که خداوند کسانی را که از حد میگذرند، دوست ندارد. و از چیزهای حلال و پاکیزهای که خداوند به شما روزی داده است بخورید و از خداوند ذاتی که به او ایمان دارید بترسید خداوند شما را در برابر سوگندهای بیهوده و بدون اراده شما معاخزه نمی کند اما شما را در برابر سوگندهای جدی شما معاخزه می کند پس کفاره آن تعام دادن ده نفر نیازمند است به سویه اوسط تعامی که به خانواده خود میخورانی یا دادن پوشاکشان یا آزاد ساختنی برده است اگر کسی هیچ کدام از اینها را نداشت سه روز روزه بیگیرد این کفاره شکستن سوگندهای شماست در هنگامی که سوگند یاد کردید و سوگندهای خود را حفظ کنید به این ترتیب خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد سپاس گزار شوید ای مؤمنان شراف قمار سنگهای نصب شده برای پرستش و بخت آزمایی به وسیلۀи تیرها و پلید است از کردارи شیطان بنابر آن از آن احتراز кنی تا باشد که رستگار شوی بیگمان شیطان می خواهد تا به وسیله شراب و خیمار دشمنی و نفرت را میان شما ایجاد کند و شما را از ذکر خدا و از نماز باز دارد پس آیا شما از این اعمال ناشایسته اجتناب نمی کنید؟ خدا را اطاعت کنید و پیام را اطاعت کنید و از نافرمانی خدا و رسولش حذر کنید اگر شما رو گردانید پس بدانید که وزیفه رسول تنها رساندن این پیام روشن است و بس برای کسانی که ایمان آوردند و کارهای نیکو انجام دادند گناهی نیست در صورتی که خود را از بدی باز دارند ایمان آرند و کارهای نیکو نمایند و باز پرهیزگاری نمایند و ایمان آرند و باز پرهیزگاری ورزند و نیکوکاری نمایند در آنچه از شراب و غیره در گذشته خوردهاند و خداوند نیکوکاران را دوست می دارد ای مؤمنون بیگمان خداوند شما را در برخی مواردی شکار که به آن دستها یا نیزه ما می, می آزماید. تا خدا کسی را که غایبانه از اون بی ترسد متمایز گرداند و کسی که بعد زین تجاوز کند برایش عذابی در ناکست ای مؤمنون هنگامی که در حرام یا لباس احرام هستید شکار نکنید و هر کسی از شما که عمدل آن را به تعطل برساند باید کفاره معادل آن را از 4 پایان بدهد کفاره‌ای که دو نفر عادل از شما معادل بودن آن را تصریح کنند و به صورت هدیه به حرم کعبه برسد یا بر اوستاد ذی مرتضajan یا معادل آن گوزه گرفتن است تا جزای کردار خود را بچشند خداوند آن در گزشته به عمل آمده بخشیده است اما اگر کسی باری دیگر مرتکب چنین عمل شود خداوند از او انتقام میگیرد خداوند صاحب قدرت منی و صاحب انتقام است با شما شکار دریا و خوردن آن برای مرفعات شما و مسافران حلال است اما شکار خشکر تا وقتی که در حرم یا در حال احرام هستید بر شما حرام است. از خداوند بترسید ذاتی که سوی او حشر می شد خداوند که بیت الحرام را وسیله قوام امور مردم گرداند و همچنان ماه های حرام، هدیه و قلاده ها را که این قربانی ها را با آن نشانی می کنند این برای آن است تا بدانید که خداوند هر آن که در آسمان ها و زمین است واقعا می و بیمان خداوند به همه چیز دارن بدانید که خداوند بدون شک سخت عذاب کننده است و واقعا خداوند آمر و مهربان است وظیفه پیامبر نیست مگر رسانیدن پیام و خداوند همه چیزهایی را که شما آشکار یا پنهان می کنید می بگو پلید و پاک همسان نیستند اگرچه وفت پلید تو را به شگفت پس ای خرتمندان از خدا بترسید تا باشد که رستگار ای مؤمنان در ای چیزهای سوال مکنید که اگر به شما واضح شود شما را نخوشنود می و اگر شما درباره این چیزها در همان وقتی که قرآن نازل می سوال کنید به شما واضح ساخته می شود خداوند از آنها درگذشته است و خداوند آمرزنده و صاحب حلم است بعضی از مردم پیش از شما نیز چنین سوالاتی را کردند و بعد از آن به سبب انکار و آن کافر شدند خداوند خرافاتی چون به حیره سایبه وسیله یا خام را مقرر نکرده است مگر این کافرانند که بر خدا به دروب بهتان میبندند و اکثرشان بیخیردند و چون به ایشان گفته شود به سوی آنچه خداوند فروح فرستاده و به سوی رسول بیایید می برای ما همان چیزی کافیست که پدران خود را بر آن یافتیم آیا با اینکه که پدرانشان چیزی را نمی دانستند و رهیاب نبودند باز هم از ایشان پیروی می کنند ای مؤمنان مراقب نفس خود باشی کسانی که گمراه هستند و شما زره رعایط کردن نمی توانند اگر شما رهیاب باشید بازگشت همه شما به سوی خداست و شما را به همه چیزهایی که می‌کنید آگاه می‌سازد. ای مؤمنان، چون شما مرگ در رأس در هنگام وصیت دو نفر عادل را از میان خود از مسلمانان به گواهی بیگیرید و در صورتی که با سفر باشید و مصیبت مرگ شما را در رسد، می توانید دو نفر از غیر خود یعنی غیر مسلمان را برای وصیت به گواهی بگیرید. این دو گواه گواهر ایشان به خدا سوگند یاد کنند که اگر شک دارید این سوگند را به پول سودا نمی کنیم اگر چی طرف مقابل از خیشاوندان ما باشد و گواهی را که محض برای خدا است نمی پوشی. اگر چنین کنیم از گنهکاران می گردیم اگر اطلاع حاصل شد که آن دو گواه گناه شهادت را مرتکب اند، پس بجای آنها دو نفری دیگر از کسانی که حقشان به وسیله دو گواه نخستین پایمال شده است به گواهی بپردازند پس این دو گواه چنین سوگند یاد به گمان شهادت ما شهادت آن دوی دیگر راست است تجاوزی نکرده ایم اگر ما چنین کرده باشیم از جمله ستم ستمگاران میگردیم این مساحدترین شیوه یست که با رعایت آن ایشان شهادت را به شکل راستین آن می دهند. یا اینکه بترسند که بعدا سوگندهای دیگری سوگندهای ایشان را رد می کند از خداوند بترسید و به حکم او گوش فرا و خداوند مردم فاسق را هدایت نمی کند آن روز فرا رسیده نیست که خداوند همه پیامبران را جمع می کند و به آنها می گوید به شما از جانب مردم چی جوابی داده شده است می ما چیزی نمی دانیم این تو هستی که امور غیب را می دانیم. بیادار که خداوند گفت ای عیسی پسر مریم نیمت مرا که با تو مادرت ارزانی داشتم بیادار آن وقت که تو را به روح و قوت دادم با مردم در تفلی و در سن کوهولت سخن می گفتی و بیادار که من به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل را گفتم و بیادار که از گل شکل مرغ را به اجازه من می ساختی و در آن می ده می و آن به اجازه من مرغی می شد و کور مادرزاد و پیس را به اجازه من شفا می دادی و به یادار که مرده را به اجازه من زنده ساختی و بهیادار چگونه من بنی اسرائیل را از رسانیدن آسیب به تو باز داشتم در آن هنگام که به ایشان نشانههای روشنی را آوردی پس کافران ایشان گفتند این به از جادوی آشکارا چیزی نیست و ویادار هنگامی را که به هواریون الهام کردم که به من و پیامبرم ایمان آورید. گفتند ایمان آوردیم و تو گواه باش که ما واقعا مسلمانیم و ویادار هنگامی را که هواریون گفتند ای عیسی پسر مریم آیا پروردگار تو می تواند برای ما سفره از آسمان فرو فرستد عیسی گفت از خداوند بترسید اگر ایمان دارید گفتند می خواهیم از آن بخوریم و دلهای ما مطمئن شود و بدانیم که تو گواکند به ما راست گفتی و ما بر این معجزه گواه باشیم عیسی پسر مریم گفت ای خدایا پروردگار ما از آسمان بر ما سفرۀی فرود آورد تا برای ما عید باشد برای اول ما که در این عصر زندگی می کنیم و آخر ما یعنی سویه که بعد از ما می و اشانه از جانب تو باشد ما روزی دهید و تو بهترین روزی دهندگانی خداوند گفت من آن را بر شما فروت آرنده اما اگر کسی از شما بعد از آن کافر شود او را به چنان عذاب عذاب می کنن که به آن هیچ کسی دیگر را جهانیان عذاب نکنم. و بیادار هنگامی را که خداوند گفت عیسی پسر مریم آیا تو مردون مردم گفتی من و مادر مرا جز خدا و حیث معبود بگیرید؟ عیسی گفت پاکی تو مرا نسزد چیزی بگویم که حق گفتن آن را ندارم اگر چنین چیزی می گفتم تو واقعا آن را می دانیستی تو آنچرا در نهاد من است می دانی اما من آنچرا در نهاد توست نمی دانم واقعا این تو هستی که غیب را می دانی من هرگز به ایشان جز همان چیزی که تو مرا به آن امر کردی نگفتم اینکه خداوند پروردگار من و پروردگار خود را بپرستی و من تا هنگامی که در میان ایشان بودم بر ایشان گواه بودم چون مرا برداشتی تو ناظر حال ایشان بودی و تو بر همه چیز گواهی اگر ایشان را عذاب کنی بندگان تو اند و اگر ایشان را بیا پس تو صاحب قدرت منی و با حکمتی خداوند گفت این روز است که در آن راست بویان را راستیشان بهنور می سازد ایشان را باقهای است که در زیر درختان آن جویبارها جریان دارد، و در آن جادانه فاهند بود خداوند از ایشان خوشنود است و ایشان از خداوند خوشنودند این است رستگاهی بزرگ پادشاهی آسمانها و زمین و آنچه در آنها است از آن خداست و او بر هر چیزی تواناست